بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ تجیبینا تاہرین المحسومین لاسی ما بقییت لا فل ارزین امسال اجازه میخوام با الهام از باز خطبه فدک ولی یه بحث رو به یه شکل دیگه ای مطرح کنیم اون تحت این عنوان خب کسی که مسلمان باشه حالا ما بعضی از مستشرقینی که مسلمان نیستن از خارج از اسلام میان راجب اسلام مطالعاتی میکنن اون یه بحث دیگریست حتی در اونجا هم میشه این سؤال ترک کرد. ولی من فعلا بیشتر روی سخنم با مسلمینه کسی که مسلمان باشه با قرآن مختصری هم آشنایی پیدا کند با روایات شخص پیغمبر اسلام یه مختصر ولو نه دقیق و مفصل حتی یه مختصری آگاهی پیدا کنه و اگر یه مقداری عقل خودش رو حکم قرار بده نسبت به تاریخ زندگی حضرت زهرا سلام الله علیه ها، همون مقداری که مبرخین نوشتن، نه حتی فقط شیعان، غیر شیع هم نوشتن، اونا رو مطالعه کنه و بخواد عقل را حکم قرار بده و قضاوت کنه، این دو نکته براش در مرحله اول مطرح میشه، نکته اول که مقام حضرت زهرا مقام یک انسان عادی معمولی نیست. یه انسان خاصی است چه از دید قرآن کریم، چه از دید روایات پیانبر، چه انسان وقتی مواجه میشه با تحلیل زندگی اون حضرت، همش شگفتیه، همش عظمته، همش بزرگیه، این جای بحثی نیست، مفصل هم بحث کردیم از ابعاد مختلف با هم دیگه که نمیخوام تکرار کنم، این یه نکته روشنه. نکته دومی که باز روشنه در تاریخ برای هر فردی و اگر غرض و مرضی در کار نباشه اینجا هم به تعمق واداشته میشه اینه که این انسانی که برای مسلمونها از دید قرآن و روایات پیامبر و نگاه عقلی به زندگی اون حضرت همش بزرگی و عظمته چرا اینقدر با او بد برخورد کردن. و اینقدر او را آزردن و به صورت شهیده از دنیا رفت و این همه اعتراضی که اون حضرت با اینکه که دوران زندگیشون بعد از پیغمبر بسیار کوتاه بوده این نود پنج روز، در همین نود پنج روز چه برخورد زشت و بد و ناروایی با اون حضرت شده، که اون حضرت فرمایشاتی که دارند که بخششو از خطبه فدک من جدا کردم با همدیگه انشالله بحث کنیم، خب چرا اینجوری با ایشون برخورد کردن؟ این دو نکته. یک، مقام خیلی بالاست. عظمت خیلی عظیمه. نکته دوم ظلم و ستم و بدی برخورد با اون حضرت هم خیلی عظیمه. خب چرا؟ کیا این برخورده کردن؟ الاز ظاهر که مسلمان بودن؟ الاز ظاهر که قرآن قبول داشتن الاز ظاهر که پیروان پیغمبر بودن؟ قضیه چیه؟ به خصوص این سوال از این دیتر میکنم. آیا فقط از این جهت که ما بفهمیم در اون زمان چرا یا این چرایی برای نحوه مسلمان بودن امروز من و شما هم مطرحه یعنی اون چرایی اگه روشن بشه؟ امروز ما چگونه مسلمانی هستیم و چرا اینگونه مسلمانیم و چگونه مسلمان بناس باشیم، اینم جواب از توش در میاد. لذا برای اینکه به این نکته توجه کنیم، من یه مقدمه ای رو اول میچینم. بعد از ذکر این مقدمه، فقط از فرمایشات خود اون حضرت به ویژه در خطبه فدک این قضیه رو مطرح میکنم. من تکیم بر فرمایشات خود و اون حضرت. این مقدمه را اول دقت بفرمایید. اصولاً وقتی انسان به عنوان یک موجود مختار مطرح میشه که هممون میدونیم و بحثاشم مفصل کرده ایم میتونه با اختیاری که داره تو بعد عقل و تو بعد الهی خودش اوج بگیره بشه سلمان فارسی ها و انسانه بسیار ارزنده و ایدئال یا نقطه مقابلش همین انسان میتونه در بعد حیوانی و شهوانی و غریزی خودش هم اونقدر سقوط کنه به اسفل و سافلینی برسد که زشتی و تباهی و بدی از او به هر گونه ای که شما فکرشو بکنید و روز کنه و ظهور کنه. این واقعیت. خب، حالا که بعضی از انسانها بد میشن و بر مبنای اختیاری که دارن بعد حیوانی شنو قوی میکنن، اون جنبه‌های الهی رو به فراموشی می‌سپارند اینا معمولاً تلاش دارن که جامعه رو آلوده کنن تا از آب گلالود بتونن ماهی بگیرن لذا ظلم می‌کنن دروغ میگن خیانت میکنن، تحریف ارزش‌ها رو انجام میدن با ارزندهها میانه خوبی ندارن چون ارزنده‌ها و روشنگران و افراد سالم موی دماغ میشن مزاحم کار اونها میشن مانع اهداف اونها خواهند بود لذا اینها است در طول تاریخ هم دیدیم دیگه همیشه بودن که ظالمین و قلدران تاریخ می یا افراد ارزنده رو از سر راهشون بردارن بکشن زندانی کنن تبعید کنن یا تحریف شخصیت کنن مردم رو از این شخصیتها بری و بیزار کنند مردم از اینها فاصله بگیرند. خب آیا این که با حضرت زهرا سلام الله علیه ها این گونه عمل کردند، این مشکل فقط مشکل سردمداران باطل بود یه اده افراد به عنوان سردمداران باطل که تحت عنوان منافقین صدر اسلام اینا با حضرت زهره این برخورده کردن کما اینکه در طول تاریخ اگر قدرتهای ظالم و نیروهای باطل تلاش دارند به اهداف سوء خودشون برسن اونا از هر امکاناتی استفاده میکنن تا به خواسته های خودشون نائل بشن یه همچه چیزی در زمان حضرت زهرا به وقوع پیوسته یا یه چیز دیگه هم در کاره ما وقتی تو خطبه فدک دقت می کنیم و این مقدمه وارد اونجا بد میبینیم نه اینکه این قسمت را عزت زهرا سلام و اشاره نفرمودن. انگشتش گذاشتن و اینو فرمودن. کلا برای تو کجا و چی فرمودن. ولی میبینم اگر از نظر حجم مثلا به اندازه فرض کنید پنج خط یا ده خط راجب این مطلبی که الان عرض می‌کنم، حضرت تذکر دادن تو خطبه فدک؟ پنج برابرش یا شش برابرش به عامل دوم توجه داده. عامل دوم چیه؟ عامل اول اهداف سوء سردمداران باطل. اقراض باطل حکام ظالم. بله این اهداف سوء هست. و اونا بر مبنای خواسته ها و اهداف سوء خودشون یه نوع شیطنت هایی میکنن که حضرت اینو اشاره فرمودن حالا با هم میبینیم ولی ارز کردم اگر از نظر حجم و کمیت این عامل رو تو فرمایشات حضرت زهرا ما نسبت به این وقایع بد صدر اسلام ببینیم پنشش برابرش موضوع دوم مطرح شده موضوع دوم چیه؟ سستی و همکاری مردم عادی با زمامداران باطل سستی نسبت به حق سستی نسبت به دفاع از حقیقت حق سستی نسبت به معرفت نسبت به ارزش ارزش و بدتر از این امر سستی نسبت به معرفی ارزش ارزش و همراهی با ارزنده همکاری با افراد باتل اینو حضرت خیلی روش انگش گذاشته یعنی اگر شما در یک نظام اجتماعی در جامعه بشری در یک محدوده کوچیکی توی روستا در محدوده بزرگتری در یک کشور تو محدوده گسترده‌تر کره زمین فعلا در رابطه با ما انسان‌ها اگر یک عده زیرک با نقشه خائنانه بنابرای ظلم و ستم و جور دارن و میخوان با این ظلم و ستم و جور به اهداف خودشون برسن اینا یه قدرته ولی مردم عادی و اکثریت و عامه مردم و جامعه نسبت به این برخوردها چگونه عمل میکنن؟ گاهی در مقابل افرادی که حقا جایی جای اینکه به اونها کمک بدن با اونها یاری کنند، سستی میکنن تنبلی میکنن چرا اینم تو فرمایشات از زهرا هست همینا رو از فقط از خدمت فدک در میارم خدمتتون عرض میکنم و گاهی بدتر از این عمل میکنن یعنی نه تنها سستی نسبت به ارزش ارزش ها دارن نسبت به جناه حق کوتاهی میبرزن نسبت به اون ظالمین و نسبت به اون خائنین چه میدانند اونها باطلند ولی همکاری میکنند یا بر اساس جهل و نادانی و قفلت آباسیاب آب اونا میریزند و این بیشتر باعث میشود که کفه حق ترازو مظلوم واقع بشه و کفه ظلم ترازو بیشتر بتونه قلبه پیدا کنه این مقدمه رو داشته باشید حالا اجازه بدید من از خطبه فدک ببینید این مطلب رو در این سچار جلسه ای که به مناسبت اون حضرت بیاری خدا با هم خواهیم داشت چه مقدار میتونیم مطلب در بیاریم انایت بفرمایید خب حضرت زهرا سلام الله ها الاز ظاهر خطبه فدک رو برای چی خوندن پشت بابردن مسجد فدک باقیست مزرعه بیرون مدینه. قبل از رهلت پیغمبر، این در اختیار پیغمبر قرار گرفته بود، اصلا بیت المال مسلمین نبود، طبق اون قضایای فقه اسلام که میدونید ملک شخصی پیغمبر اسلام شده، پیغمبر اسلام هم طبق امر خدا که پیغمبر خداوند به او در قرآن امر کرد، و آتزل قربا حقهو، این وابسته نزدی که به خودت حقش رو بهش بده، پیغمبر فدک بخشید به حضرت زهران. خدا دستور داده، پیغمبرم بخشید به حضرت زهران، ملک تلغ حضرت اصلا ارث نیست، ملک است که در حیات پیغمبر به حضرت زهرا بخشیده شده و ایشون هم مورد استفادهش بود. حالا بر اهداف سیاسی خاصی که مطرح بود که اینا رو ما قبلا بحث کردیم نمیخوام تکرار کنم، اومدن فدک را از حضرت زهرا گرفتن. کی؟ مگه از زهرا چقدر زنده بود بعد از پیغمبر؟ نوود و پنج روز. روز بعد از همون واقعه هفته اول شهادت پیغمبرم که حضرت به بستر افتادن. یعنی همون روزای اول حساب شده برنامه ریزی کرده بودن. اولین اقدامی که کردن فدک رو گرفتن. حضرت زهرا سلام الله علیها سه تا برخورد دوتا شنعوز و بالله. یک، با دستگاه کنار بیاد برای اینکه دنیاش تو روغم بیفته و با, با همدیگه بسازن و و دستشون تو یک کاسه بره و اینکه بله مقامیشون عجله با اون حرفهایی که راجب مقام حضرت میدونیم دو هیچ اقدامی نکنن ظالم با دومش گردو میشکنه. ما داریم حقائق رو زیرو رو میکنیم ارزش ها رو باجگونه میکنیم. هیچ کسی هم در مقابل ما هیچی نمیگه خب اینم که از شان ازت ضررا دوره سومی. حضرت زهرا لاعقل برای یک کسانی که قصد روشن شدن دارند و قرز و مرضی ندارند در اون روز اسلام و در تاریخ اسلام با حقیقت آشنا بشن اتمام حجت بکنه اصلا کار فرستادگان الهی هدایت اجباری نیست اتمام حجت کار همه انبیا اتمام حجت کار امامانم اتمام حجته اگر ای سالب مطلوبه اونم یک زمینه اتمام حجت داره که تو بحث امامت باید بحثش رو بکنیم یعنی چی کار کاری ندارم لذا حضرت زهرام الان یک رسالت الهی به احدشه که اتمام حجت کنه لذا تشفاوردن مسجد این خطبه رو ایراد کردن عنوان چیه؟ و چرا پدک رو غصف کردی؟ برای چی گرفتید؟ که معلوم کنه کارتون آقا جون اشتباس. شما اگه خودتونو به عنوان جانشین پیغمبر جازدید، اگر دارید میگید این حکومت حکومت الهی اسلامیه، اگر میگید است که بعد از پیغمبر باید اینجوری جامعه اداره بشه، من به عنوان تنها دختر پیغمبر که پیغمبرم در مورد او فرموده، ابوها فداها وحیه امه ابیها پیغمبر در مورد او فرموده ان الله یقز بلغزب فاطمه و یرزال ها و و همه اون عرفا که میدونید من دارم میگم این را غلطه به, به چه دلیل؟ خب اونم کاری ندارم باز فرمایش حضرت چیه چجوری ما اما بحثم اینه حضرت وقتی اومدن این مطلب رو ترک کنن خب عنوان چیه چرا پدکو گرفتید گرفتی؟ و فرمودنم چرا گرفتی؟ اونام یه توضیح دادن که ما از پیغمبر شنیدیم که پیغمبر فرموده ما ارث باقی نمیگذاریم حضرت طبق آیات و قرآن فرمودن این دروغه اولا چطور این روایتو فقط شما شنیدی دیگران نشنیدن؟ من که دختر پیغمبرم نشنیدم علی که همیشه با پیغمبر بود نشنید سلمان نشنید ابوذر نشنید مقداد نشنید این یاران این چنانی پیغمبر نشنید تازه این که خلاف قرآنه مگر روایتی که با قرآن مخالف باشه میشه اینا رو بحث کردن مفصل و حضرت حتی جالب که اگه برسم باید این بحثو دلم میخواد براتون مطرح کنم که حضرت تو خطبه فدک انغوش گذاشتن روی این زمینه که آی ملت مسلمون حواستونو جمع کنید دارن اجتهاد در مقابل نص صورت میدن اینو بعد براتون میشکافم یعنی چی که اگر تو دنیای اسلام اجتهاد در مقابل نص را افتاد فاتحه اسلام رو بخونید اون روز فاطمه زهره سلام الله ها تو خطبهه پدکی رو تذکر دادم اما الان بحثم چیه حضرت همه حرفا رو فرمودند ولی وقتی شروع کردن راجب خطبهه پدک اول وارد حرفا نشده. اول حمد خدا رو فرمودن درود الهی رو سر دادن درود بر پیغمبر اسلام فرستادن پیغمبر رو معرفی کردن خودشون بعد از همه حرفها خیلی جالبه اولین مطلبی که ما می‌بینیم حضرت بعد از حمد خدا و درود بر پیغمبر و معرفی پیغمبر و معرفی خودشون اولین مطلب رو به جمعیت یعنی چی روی سخن حضرت با جمعیت حالا اینی که بنده کنم شما مجدداً به خطبه فدک مراجعه بکنید مثلا یک صفحه و نیم از خطبه فدک رو بیه جلو حمد خدا مباحث توحیدی بعد درود بر پیغمبر، مباحث در رابطه با حضرت، معرفی ایشون، توجب اینا، بعد بلافاصله حضرت چی میفرمایند ثم التفتت الى اهل المجلس و قالت هنوز هیچی از فدک نفرموده، هنوز هیچی راجب این که چرا من اومدم تو مسجد و الان این جلسه برپا شده، اینا رو آمده تو مسجد فرض کنید بلا... نه... ب... از باب تشویق بلا تشویق عرض میکنم. آقا بنده اومدم پشت این تریبون قرار گرفتم بسم الله میگم حمد الهی میگم یه خطبه ای می خونم بعد شروع میکنم روی سخن با شما صحبت کردن حضرت زهره اومدن تو مجلس شروع کردن حمد خدا خوندن درود بر پیغمبر فرستادن یه مقدماتی به شریعت و اسلام و پیغمبر و معرفی خود بعد ثم التفتت الی اهل مجلس روی سخن با مردم کردن. مخاطب حضرت در بحث فدکی بود؟ ابوبکر بود که. و بعدش هم داره ادامش. ایشون ابوبکر رو مخاطب قرار داد بحث کرد خیلی. ولی چرا قبل از اینکه با عبوبک صحبت کنه و قبل از اینکه که حکومت وقت رو زیر سوال ببره مردم رو زیر سوال برد؟ حالا از عبارت در میارم. مخاطب بگه مردم شما باعث شدید. شما سستی کردید. شمایید که به این روز کشندید که من دختر پیغمبر بیام اینجا باشم محاجه بکنم. شرای شما این مردمی کاری کردید؟ حالا از کجا؟ ببینید. س... و توجه داشته باشید روال بحث دارم ارزم کنم. من از نظر سند خطبه فدک سالهاست که اینجا بحث کردیم تکرار نمی کنم. تو چه کتابای معتبر اهل سنت هم خطبه فدک اومده؟ تکرار نمی کنم گفتم اونوش بحثا گذشته الان داریم یه بحث دیگه می کنیم میگیم این خطبه فدک که تو این همه کتابا اومده و سندش برای همه نقل شده وقتی میبینیم همه اختلافی هم که هست توی کلمات جزئی از نظر مثلا اینجا نون بوده یا ت بوده که بعضی نسخه بدل ها رو عرض میکنند و چرا همینجوری گفته شده اما این روال همه رو نوشته. اول همد خداست و بعد درود بر پیغمبر است و بعد معرفی پیغمبر است و بعد معرفی خودشه ولی قبل از هر سخنی بعد از این مقدمات ثم تفتد الى اهل المجلس و قال بعد از این مقدمات رو رو برگردوندن به مردمی که تو مسجد نشسته بودن کی فرمودن انتم عباد الله نصب امرهی و نحیه یعنی اول با شماها من کار دارم، بندگان خدا، جمعیتی که تو مسجد پیغمبر کنار قبر پیغمبر جمع شدید نشستید. شماهایی که به عنوان امت اسلامی پیروان مسا... پیغمبر پیغمبر رو دیدید، رفتار پیغمبر رو با من و علیم دیدید، الانم شاهد رحلت پیغمبر هستید و و میبینید دخترش اومده داره، با قدرتی که بعد از پیغمبر روی کار نشسته هنوز که چند روزم نه چند روز نه چند هفته هنوزم که چند روز نگذشته نزدیکترین و عزیزترین فرد به پیغمبر اومده تو مسجد داره اعتراض میکنه ولی اول با شما مردم میخوام حرف بزنم انتم نص با امره و نهی شما مخاطب و علم و پرچم مشخص امر و نحی خدایید یعنی اگه اسلام اومد امر کرد نحی کرد کسانی که تو مرحله اول با اونها بود صحبت بشه شما بودید دیگه که دوره برای پیغمبر بودید و حملت و دینهی و وحیه حاملان دین این پیغمبر که اینو حمل کنند به دیگران برسونند منتقل کنندگان وحی پروردگار این وحیی که به پیغمبر رسید اینو باید انتقال بدن به دیگران برسونن انتم شماهایید یا عباد الله دقت کنید به کلمات یا عباد الله انتم نصف و و نحیه. شما که اون چهره شاخص و علم و پرچم بارز امر و نهی پروردگاری یعنی اگر امروزه اون روزی که از زهرا سلام الله علیها دارن این فرمایشو میکنن امروزه اگه ایران بخواد ببینه اسلام چی میگه، مصر اگه بخواد ببینه اسلام چی میگه، شامات اگه بخواد ببینه اسلام چی میگه، بلاد بیرون مدینه و عربستان ببینن اسلام چی میگه؟ خب شماها آباد بگید دیگه. انتم نصب امرهی و نحیه. و حملت دینه و وحیه. شماها باید منتقل کنید. شماها حاملان دین پیغمبرید. شماها منتقل کنندگان وحی الهی به دیگران هستید و امنا الله علا انفسکم امینان الهی امانداران خدایی نسبت به اون که برای شماست و باید به دیگران برسونید شماها هستید و بلغاؤهو اله امم امتهای مختلفی که وجود دارن و بناس با اسلام آشنا بشن ببینن پیغمبر چی فرموده ببینن قرآن چی گفته اسلام چی داره میگه بلغاش ابلاغ کنندگانش کیانن شما دیگه؟ خب از زهرات چرا بلافاصله روی سخانه با مردم کردن و این عبارات رو فرمودن یه کم بریم جلوتر یه فرمایشات دیگه رو حضرت مطرح میکنن بعد از اون فرمایش یه چیزای دیگه رو باز با این مردم میگن این امروزم من و شما در واقع مخاطب عزت زهرائیم، شما مسلمونا، اسلامو چجوری دارید به دیگران معرفی میکنید، شما مسلمونا نسبت به اسلام و اکسل عمل افراد مختلف در رابطه به اسلام شما چگونه هستید؟ آیا مثل مردم زمان پیغمبر اسلام و صدر اسلام که از زهرا سلام علیه ها دارن اینا رو جامعه شناسیش می و معرفی میکنند که اینا چجوری چکار کردند و چی شد که من زهرا باید محکوم بشم و علی خانه نشین باشد جب یه جور دیگه بشه چرا؟ دقت بفرمایید پس یک سمال تفتت الى اهل المجلس بلا تکید میکنم تأکید میکنم عزیزان بلا فاصله بعد از حمد خدا و درود بر پیغمبر و معرفی پیغمبر و معرفی خودش با اینکه که عنوان فدک است ولی اول مردم رو سرزنش کردن فرمودن ولی سرزنششون رو با ابتدا با نقشی که مردم دارن عباد الله انتومنس و امرهی و نحیه و حملت دینهی و دینه وحیه و امنا الله علا انفسکم و بلغاهو الى الامم شما خودتون دست کم گرفتید؟ خیال کردید هیچ مسئولیتی ندارید؟ هر کی هر کاری درش میخواد بکنه بکنه شماهایید که باید انتقال بدید به دیگران برسونید